شنوتو با افتخار تقدیم می کند www.shenoto.com <موسیقی> <موسیقی> <موسیقی> کتاب شم شما روحان علوشگی برنامه کتاب امشب با بازخانی لرومان ازشمنده بی نمایان اثر نمیسنده بزرگ فرانسه ویکتور روگو در خدمت شما از شما دعوت میکنم به ادامه داستان توجه کنید ریوس بعد از تدفین پدرش به پاریس برگشت و تحصیلاتش را از سر گرفت. اما یک روز که باز به همان کلیسای دوران کودکیش رفته بود اتفاقاً به آقای مابوف سرپرست کلیسا برخورد. او جای آقای مابوف را در کلیسا اشتباهی اشغال کرده بود. آقای مابوف به او گفت که آنجا برای او مقدس و مهم است چون هر بار پیرمردی در آنجا می آمده و پسرش را از دور میدیده و اشک میریخته است. وقتی آقای مابوف مرد را بیشتر معرفی کرد، ماریوس فهمید آن مرد پدرش بوده است و این نوعی آگاهی انقلابی در او به وجود آورد. از آن به بعد، هرچه بیشتر درباره پدرش تحقیق کرد و تاریخ را خواند بیشتر شیفته پدر قهرمانش، ناپلئون و انقلاب فرانسه شد. به علاوه، برای خودش کارت ویزیتی به نام باران ماریوس پون مورسی چاپ کرد. چند بار هم سر قبر پدرش رفت و بعد دنبال تناردیه گشت تا به وصیت پدرش عمل کند اما او را پیدا نکرد آقای جیونورمان و خالهش تغییر رفتار ماریوس را می دیدند. اما فکر می او عاشق دختری شده است ولی بعد یک روز کارتای ویزیت او و نامه پدر ماریوس را در جیبایش پیدا کردند بین پیرمر و ماریوس جر و بحث تندی شد آقای نورمان به ناپلوان و انقلاب فرانسه و پدر ماریوس ناسزا گفت و ماریوس به برگون ها و لویی اجده سپس پیرمند گفت بسیار خوب بارونی مثل شما و برجوبایی مثل من نمیتونن زیر یه سخف زندگی کنن گمشو از خونه برو بیرون و ماریوس لیز با سی فرانک و چند دست لباس از خانه به طرف دانشگدهش رفت ماریوس در محبته میدان سن میشل سوار بر کالسکه میشد و سرگردان بود که دو نفر از دانشجویان انجمن انقلابی آبسه او را دیدند و یکی از آنها کورفراک او را به خانهاش برد ماریوس در میان افراد انجمن کم, کم شیفتگیش نسبت به ناپولئون کمتر شد اما زیاد هم از جمهوری خواهی دانشجویان انجمن آبسه پیروی نمیکرد در این دوران زندگی به او سخت میگذشت مجبور شد ساعت طلایش را بفروشد با اینکه لباسایش پاره بود و گایی گرسنگی میکشی 600 فرانک پولی را هم که خالهش برای او فرستاده بود با غرور تمام برگردند کم کم در یک کتاب فروشی کاری گیر آورد و برای ناشران و مجلات چیزهایی را ترجمه میکرد و درآمدی به دست www.shinoto.com اکسه سال بود که ماریوس پدر بزرگش را ترک کرده بود. اما بعد از رفتن او چشم پدر بزرگش به در بود تا باز نوه عزیزش را ببیند. اما چون مغرور بود میخواست ماریوس بیاید و شخصا به پایش بیفتد. از طرف دیگر ماریوس نیز حاضر نبود پیش کسی که به پدرش توهین کرده بود برود. چندی بعد ماریوس اتاقی در ساختمانی اجاره کرد. یک روز نیز از طریل زن سرایدار فهمید همسایه دیوار به دیوارش خانواده فقیری است که نمیتواند اجارش را بپردازد. و او پنهانی اجاره آنها را پرداخت تا آنها را بیرون نکنند. این خانواده دو دختر داشت و ماریوس به طور اتفاقی فهمید آنها از راه نام نگاری با اسامی مستعار به این آن گردایی می حتی یک بار وقتی دختر بزرگ و لاغر و پابرهنه خانواده اپونین که در اثر فقر و بدبختی غیافه شبیه پیر زنها بود و لاتی حرف میزد، به اتاق سر زد تا نامه پدرش را به ماریوس بدهد و پولی از او گدایی کند با او نیز آشنا شد اما از حرفای دخترک که حتی اسم ماریوس را میدانست معلوم بود که آشغ ماریوس شده است ماریوس اینک جوانی زیبا با موهای مشکی پرپشت بود اما با اینکه دخترها او را به هم نشان میدادند او خجالتی بود و از آنها فرار میکرد یکی از سرگرمی های ماریوس قدم زدن در پارک لوکزامبورگ بود ماریوس در آنجا هر روز دختر چهارده ساله و تقریبا زشتی را که لباس دختران مدارس مذهبی را به تن داشت همراه با پیرمرد موسفید و می میدید که روی نیمکت نشسته بودند و با هم حرف می زدند. ماریوس تصادفاً و بدون آنکه بداند چرا شش ماهی برای پیاده‌روی به پارک لوزانبورگ نرفت اما بعد که به پارک رفت باز آن پیرمرد و دختر را دید با وجود این دختر در این مدت چنان چهره و لباسایش عوض و زیبا شده بود که ماریوس بی اختیار شیفته و عاشقش شد دختر نیز از طرز نگاه او این را فهمید اما علاقه خود را به ماریوس از ترس پیرمرد همراهش بروز نداد این پیرمرد ژان و دختر همان كزت بود ژان بعد از چند سال زندگی در سومعه به بهانه مرگ بابا فشلوان و نیز ارسی که به او رسیده پنج هزار فرانک بابت مخارج پنج سال تحصیل كزت به سومعه داده و با خواهران روحانی خداحافظی کرده بود ولی برای اینکه این که اشتباه دفعه قبل را تکرار نکند یک خانه ویلایی و دو آپارتمان دیگر نیز در سه نقطه شهر اجاره کرده بود تا هرگاه مشکلی پیش آمد بتواند فوری خانهاش را عوض کند به علاوه برای اینکه یک جا ساکن نباشد حد چند وقت در یکی از این خانه‌ها زندگی میکرد اما در مدتی که در صومعه بود و پس از آن فقط از یک چیز نتوانسته بود فرار کند و آن عضویت اجباری در گارد ملی بود جنوالجان با وجود اینکه سنش بالا و از خدمت معاف بود اما چون شناسنامه نداشت پذیرفته بود که سالی دو سه بار لباس فرم بپوشد و در مراسم رسمی ارتش شرکت کند ماریوس از آن روز به بعد هر روز لباس های اش را می پوشید و برای دیدن کوزت به پارک لوکزامبورگ میرفت. اما ژان والجان کم سر و وضع او نگاه های معنیدارش و اینکه هر بار ژان والجان و کوزت میرفتند اون نیز پارک را ترک می کرد متوجه نگاه های خاص ماریوس به کوزت شد. حتی بعدا فهمید ماریوس آنها را تا ساختمانشان تغییب کرده و از سرایدارشان چیزهایی پرسیده است. به همین دلیل فوری همراه با کوزت خانهش را عوض کرد و به خانه ویلایی دیگر در نقطه دیگر پاریس که باقی متروک در جلوان بود و دو در و دو ساختمان داشت نقل مکان کرد به علاوه دیگر با کوزت به پارک لوکزامبورگ نرفت ماریوس افسرده و ناراحت شده بود اما کرد نتوانست نشانی کوزت را به دست آورد آنها آقای زده بود چندی بعد در یک روز زمستان وقتی در اتاقش بود به طور اتفاقی حرفای خانواده فقیر دیوار به دیوارش را شنید و وقتی از سوراخی در تیره بین دو اتاق نگاه کرد فهمید خانواده فقیر همسایه او به پیرمرد نیکوکار و سربتمندی نامهای نوشتند و قرار است آن پیرمرد به خانه آنها بیاید و به خانواده آنها کمک کند نیکوکار با دختری جوان آمد. دختر همان کوزت بود فیلمند نیکوکار یعنی ژان والجان نیزرختی وضع زندگی دقتبار خانواده فقیر همسایه ماریوس را دید قول داد که عصر با کمک بیشتری بیاید و رفت ماریوس باز هم از اتاقش به حرفهای همسایه اش گوش داد و رفتار آنها را از سوراخ دیوار نگاه کرد ناگان از حرف و کارهای آنها فهمید که آنها پیرمند نیکوکار را میشناسند و قصد دارند پیرمد یعنی پدرزن احتمالی او در آینده را اصل در آن خانه با هم چند دزد و خلافکار دیگر گروگان گرفته و با تهدید از او پول گذافی بگیرند او پنهانی به اداره پلیس رفت و موضوع را با بازرس جابر در میان گذاشت جابر آن ساختمان را می شناخد. کلید در ساختمان را از ماریوس گرفت و به او دو تپانچه پرداد سپس از او خواست دوباره به خانه برگردد و وانمود کنند در خانه نیست اما گوش به زنگ باشد تا به محض اینکه همسایهاش و دوستان خواستند کاری بکنند با تپانچه ها چند تیر هوایی شلیک کند تا او و پلیسا به خانه حمله کنند و دوستان را دستگیر کنند. ماریوس به خانهش برگشت پیره نیز اصر با پول خوبی آمد و پول را به همسایه فقیر او داد اما ناگان رفتار همسایه فقیرش با ژان والجان عوض شد و با کمک همدستانش ژان جان را گرفتند و بستند سپس بین ژان والجان و همسایهش صحبتهایی رد و بدل شد که ماریوس فهمید همسایه فقیر او در واقع همان تناردیه است به همین دلیل دچار تردید شد نمی که باید به وسیعت پدرش نسبت به تناردیه پست عمل کند یا با شدی که چند تیر پلیس را خبر کند و جان پدرزن آیندهش را نجات دهد تناردیه ژان والجان را تهدید کرد و گروگان نگه داشت تا زنش با یکی از همدستانش به نشانی که ژان والجان داده بود برود و کوزت را بیاورد تا بلکه بعدن بتوانند از جانوال جان پول گذافی بگیرند. زن تناردیه رفت و برگشت اما گفت که نشانی که جانبال جان داده بود گلابی است دزدان خشمگین شدند و خواستند جانبال جان را بکشند اما ماریوس از سوراخ دیوار کاغذی در اتاق آنها انداخت که در آن نوشته بود ها اینجا هستند تناردیه و دزدان فکر کردند کاغذ را اپونین که بیرون کشیک میداد به داخل انداخته است برای همین بعد از خواندن کاغذ سعی کردند از پنجره با کمک مردبانی تنابی فرار کنند اما ژاور و پلیس سر رسیدند و همه دوستان را دستگیر کردند ژاور بعد از دستگیری دوستان میخواست با پیرمرد نیکوکار یعنی ژان والجان نیز صحبت کند اما بعد فهمید پیرمرد دستانش را باز کرده و از پنجره فرار کرده است تناردیه و همدستانش به زندان افتادند اما روز بعد وقتی ژاور دوباره به آن ساختمان برگشت تا با ماریوس صحبت کند فهمید ماریوس نیز از آن خانه اسبابکشی کرده و رفته است ماریوس دوباره پیش دوست دانشجوش کورفراق رفته بود تناردیه بعد از ورشکستگی در گرداندن مسافرخانهش در منفرمی به پاریس آمده بود و با گدایی از آن و از رای همدستی با شبکه های پاریس زندگی میکرد او از آن زمان به بعد صاحب سه پسر دیگر نیست شده بود پسر اولش گاورش را در خیابانها راها کرده بود تا خودش بزرگ شود. و دو پسر دیگرش را نیز در کوچکی به زنی خلافکار که پسرانش مرده بودند اما به دو پسر احتیاج داشت تا از مرد ثروتمندی حق و سکوت بگیرد فروخته بود گاوروش اینک ولگرد و لاد شده بود اما مثل همه کودکان دلی پاک داشت تنادیه دخترانش به خصوص را نیز به کارهای خلاف وادار میکرد دوستان عزیز خسته نباشید امشب چهارمین بخش بازخانی رومان بی نوشته ویکتور روگو را با تنظیم رادیویی مجتبا گلستانی شنیدید خدا نگهدار. بخش بعدی این پادکست باشید www.shenoto.com